مصنوی معنوی مولوی برنامه سیوا پنجم فهم کردن موریدان که زنون دیوانه نشده است، قاسد کرده است. دستان در قصه زنون شدند سوی زندان و دران رعی زدند کین مگر قاصد کند یا حکمت است او در این دین قبله ای و آیت است دور دور از عقل چون دریای او تا جنون باشد صفف فرمای او هاشل الله از کمال جاه او کبر بیماری بپوشد ماه او. اوز شر آمه اندر خانه شد. اوز ننگ آقلان دیوانه شد. اوز آر عقل کند تنپرست است. قاصدا رفتست و دیوانه شده است. که ببندیدم قوی و ساز گاو، بر سر و پشتم بزن وین را مکاو. تاز زخم لخت یابم من حیات چون قتیل از گاو موسا ای سقات. تاز زخم لخت گاوی خوش شوم همچو کشته گاو موسا گش شوم. زنده شد کشته ز زخم دم گاو همچون مس از کیمیا شد زر ساو کشته برجست و بگفت اسرار را با نمود آن زمره خونخار را گفت روشن کین این جماعت کشتند کین زمان در خسمی هم آشفتند چون که کشته گرددین جسم گران زنده گردد هستی دان جان او بیند بهشت و نار را باز داند جمله اسرار را وانماید خونیان دیو را وانماید دام خود او ریو را گاو کشتن هست از شرط طریق تا شود از زخم دمش جان مفیق گاو نفس خیش را زودتر بکش تا شود روح خفی زنده و بهاش رجوع به حکایت زنون رحمت الله علیه چون رسیدند آن نفر نزدیک او بانگ برزد هی کیانید اتقو با ادب گفتند ما از دوستان بهر پرسش آمدیم اینجا با جان چونی ای دریای عقل زوفنون این چه بهتان است بر عقلت جنون دود گلخن کی رسد در آفتاب چون شود انقا شکسته از غراب. و مگیر از ما بیان کن این سخن ما محبانیم با ما این مکن. مر محبان را نشاید دور کرد. یا بر روپوش و دغل مغرور کرد. راز را اندر میان آور شها. رو مکن در ابر پنهانی مها ما محب و صادق و دلخسته ایم. در دو عالم دل به تو در بسته ایم. فوش آغازید و دشنام از گذاف. گفت و دیوانگانه زی و قاف. بر جهید و سنگ پران کرد و چوب. جملگی بگریختند از بیم کوب. قه قه خندید و جنبانید سر گفت باد ریش این یاران نگر دوستان بین کو نشان دوستان دوستان را رنج باشد همچو جان کی کران گیرد زرنج دوست دوست رنج مغز و دوستی آن را چپوست نی نشان دوستی شد سرخوشی، در بلا و آفت و مهنت کشی، دوست همچون زر بلا چون آتش است، زر خالص در دل آتش خوش است. امتحان کردن خاجه لقمان زیرکی لقمان را نک لقمان را که بنده پاک بود روز شب در بندگی چالاک بود خاجهش میداشتی در کار پیش بهترش دیدی ز فرزندان خیش زان که لقمان گرچه بنده زاد بود خاجه بود و از هوا آزاد بود گفت شاه شیخ را اندر سخن چیز از بخشش ز من در خواست کن گفت ای شه، شرم ناید مر که چون این گوی مرازین بر ترا من دو بنده دارم و ایشان حقیر وندو بر تو حاکمانند و امیر گفت شاه آن دو چن این زلت است گفت آن یک خشم و دیگر شهوت است شاه آنتن کوز شاهی فارغ است بیمه و خورشید نورش بازغ است مغزنان دارد که مغزن ذات اوست هستی او دارد که با هستی ا دوست خاجه لقمان با ظاهر خاجوش در حقیقت بنده لقمان اش در جهان باجگونه از این بس است در نظرشان گوهر کم از خس است. مربیابان را مفازه نام شد. نام و رنگ را دام شد. یک گروه را خود معرف جامه است. در قبا گویند کو از آمه است. یک گروه را ظاهر سالوس زاد. نور باید بود جاسوس زاد. نور باید پاک از تقلید و غول تا شناسد مرد را به فعل و قول در رود در قلب او از راه عقل نقد او بیند نباشد بند نقل بندگان خاص علام الغیوب در جهان جان جواسیس القلوب در درون دل درایت چون خیال پیش او مکشوف باشد سر حال در تن گنجشک چه بود برگ و ساز که شود پوشیده آن بر عقل باز آنکه واقف گشت بر اسرار او سر مخلوقات چه بود پیش او آنکه بر افلاک رفتارش بود بر زمین رفتن چه دشوارش بود در کف داوود کاهن گشت موم موم چه بود در کف او ایزلوم بود لقمان بند شکل خاجه بندگی بر ظاهرش دیباجه چون روت خاجه بجای ناشناس در غلام خیش پوشاند لباس او بپوشد جامه های آن غلام، مرغلام خیش را سازد امام. در پیش چون بندگان در ره شود تا نباید زو کسی آگه شود گوید ای بنده تو رو بر صدر شین، من بگیرم کفش چون بنده که هین. تو درشتی کن مرا دشنام ده، مرمه تو هیچ توقیر منه ترک خدمت خدمت تو داشتم تا به غربت تخم هیلت کاشتم خاجگان این بندگی ها کردند تا گمان آید که ایشان بردند چشم پر بودند و سیر از خاجگی کارها را کردند آمادگی وین غلامان هوا بر آن خیشتن به موده خاجه اقل و جان آید از خاجه ره افگندگی ناید از بنده بغیر بندگی پس از آن عالم بد این عالم چنان تعبیت ها هست بر این بدان خاجه لقمان از این حال نهان بود واقف دیده بود از وی نشان راز میدانست و خوش می راند خر از برای مصلحت آن راه بر مرورا آزاد کردی از نخست لیک خوشنودی لقمان را بجست زان که لقمان را مراد این بود تا کس نداند سر آن شیر و فتا چه عجب گر سر زبت پنهان کنی، این عجب که سر زخوت پنهان کنی. کار پنهان کن تو از چشمان خوت، تا کارت سلیم از چشم بد. خیش را تسلیم کن بر دام مزد، بانگه از خود بیز خود چیز بدزد. میدهند افیون با مرد زخمند تا که پیکان از تنش بیرون کنند. وقت مرگ از رنج او را میدارند او بدان مشغول شد جان میبرند. چون به هر فکر که دل خواهی سپارد از تو چیز در نهان خواهند برد هرچی اندیشی و تحصیل کنی، می دراید دوست از آن سو کیمنی پس بدان مشغول شو کان بهتر است تازه تو چیز برد کان کهتر است بار بازرگان چو در آب افتد دست اندر کاله بهتر زند چونکه چیز فوت خواهد شد در آب ترکه کمتر گوی و بهتر را بیاب ظاهر شدن فضل و زیرکی لقمان پیش امتحان کنندگان هر تعام کاور ایدندی بوی کس سوی لقمان فرستادی زپای تا که لقمان دست سوی آن برد قاسدن تا خواجه پس خوردش خورد سوره او خوردی و شوران گیختی، هر تعام کو نخوردی ریختی، ور بخوردی به دل و به اشتها، این بود پیوندی به انتها. خربوزه آورده بودن در مغان، گفت رو، فرزند، لقمان را بخوان. چون برید و داد او را یک برین، همچو شکر خورده شو چون انگبین از خوشی که خورد دا دو را دوم تا رسید آن ها تا هفتهم مان گرچه گفت این را من خورم تا چه شیرین خربزه است بنگرم او چنین خوش می خورد که ذوق او طبع ها شد مشتی و لقمه چون بخور از تلخیش آتش فروخت هم زبان کرد آبله، هم حلق سوخت ساعت بیخود شد از تلخی آن بعد از آن گفتش که ای جان و جهان نوش چون کردی تو چندین زهر را لطف چون انگاشتی این قهر را این چه صبر است این صبوری از چه روست یا مگر پیش تو این جانت ادوست چون نیاوردی به هیلت حجته که مرا عذره است بس کن ساعتی گفت من از دست نعمت بخش تو خوردم چندان که از شرمم دو تو شرمم آمد که یکی تل خست کفت من ننوشم ای تو صاحب معرفت چون همه اجزام از انعام تو رستند و غرق دانه و دام تو یک تلخی کنم فریاد و داد خاک صدره بر سر اجزام باد لذت دست شکر بخشت بداشت این بدتیخ تلخی کی گذاشت از محبت ها شیرین شود، از محبت مسها زرین شود، از محبت دردها صافی شود، از محبت دردها شافی شود. از محبت مارده زنده می کنند، از محبت شاه بنده می کنند. این محبت هم نتیجه دانش است، که گذافه برچونین تختی نشست. دانش ناقص کجا این عشق زاد؟ عشق زایت ناقص اما بر برجماد. برجماد رنگ مطلوب چدید، از سفیر بانگ محبوب شنید. دانش ناقص نداند فرق را. لا خورشید داند برق را چون که ملعون خاند ناقص را رسول بود در تعویل نقصان اقول زان که ناقصتن بود مرحوم رحم نیست بر مرحوم لایق لعن و زخم نقص اقلستان که بدرنجوری است موجب لعنت سزای دوری است زان که تکمیل خردها دور نیست لیک تکمیل بدن مقدور نیست کفر و فرعونی هر گبر بعید جمله از نقصان عقل آمد پدید بهر نقصان بدن آمد فرج در نوبی که ما علال اعماه حرج. برق آفل باشد و بس بی وفا آفل از باقی ندانی بی صفا برق خندد بر که می خندد بگو بر کسی که دل نهد بر نور او نورهای چرخ ببریده پیست آن چو لا شرقی و لا غربی کیاست برق را خو یختفل ابزار دان نور باقی را همه انصار دان بر دریا فرس را راندن نامه در نور برق خواندن از حریصی عاقبت نادیدن است بر دل و بر عقل خود خندیدن است عاقبت بین است عقل از خاصیت نفس باشد کو نبیند عاقبت عقل کو مغلوب نفس او نفس شد مشتری مات زحل شد نحس شد هم در این نحسی بگردان این نظر در کسی که کرد نحسد در نگر آن نظر که بنگرد این جرومد رو روز نحسی سوی سعدی نقب زد زان همه گردان ندد حالی به حال بحال. زد به زد پیدا کنان در انتقال تا که خوفت زاید از ذات شمال لذت ذات الیمین یرج الرجال تا دو پر باشی که مرغ یک پره آجز آید از پریدن ای سره یا رها کن تا نیایم در کلام یا بده دستور تا گویم تمام ورنه این خواهی نه آن فرمان تراست کس چه داند مر ترا مقصد کجاست جان ابراهیم باید تا بنور نور بیندن در نار فردوس و قصور پایه پایه برود بر, بر ماه و خور تا نماند همچو حلقه بند در چون خلیل از آسمان هفتمین بگذرد که لا احب بل آفلین تتمه حسد آن هشم برانقلام غلام خاص قصه شاه و امیران و حسد غلام خاص و سلطان خرد دور ماند از جر جرار کلام باز باید گشت و کردان را تمام باغبان ملک با اقبال و بخت چون درختی را نداند از درخت آن درختی را که تل تلخرت بود و آن درختی که یکش 700 بود کی برابر دارند در تربیت چون بیبی ند به چشم عاقبت کند درختان را نهایت چیست بر گرچه یکسانند این دم در نظر شیخ کوینزر به نور الله شد، از نهایت و از نخست آگاه شد. چشم آخر بین ببست از بحر حق، چشم آخربین گشاد اندر سبق. آن حسودان بددرختان بودند، تلخ گوهر شوربختان بودند، از حسد جوشان و کف می ریختند. در نهانی مکر میانگیختند، تا غلام خاص را گردن زنند، بیخ او را از زمانه برکنند. چون شود فانی چو جانش شاه بود، بیخ او در اسمت الله بود. شاه از آن اسرار باقف آمده همچوب و بکر ربابی تند زده در تماشای دل بدگوهران میزدی خمبک بران کوزگران مکر میسازند قوم هیلمند تا که را در فقای در کنند پادشاه بسعظیم بیکران در فقائی که بگنجد ای خران؟ از برای شاه دام دوختند آخرین تدبیر از او آموختند نحس شاگرده که با استاد خیش همسری آغازد و آید پیش با کدام استاد استاد جهان پیش او یاکسون، هواییدا و نهان چشم او ینظر به نور الہ شده پرده های جهل را خارق بوده از دل سوراخ چون کهنه گلیم پرده بندد به پیش آن حکیم پرده می خندت برو بر او با صد دهان هر دهان گشته اشکافه بران گویدان استاد مر شاگرد را ای کم از نیستد با من وفا خود مرا استا مگیر آهن گسل همچو خود شاگرد گیر و کردل نزمنت در جان و روان بی منت آب نمی گردد روان پس دل من کارگاه بخت توست چشکنی این کارگاه ای نادرست گویش پنهان زنم آتش زنه نه به قلب از قلب باشد روزنه آخر از روزن ببیند فکرتو دل گواهی میدهد زین ذکرتو گیر در رویت نمالت از کرم، هرچی گوی خندد و گویت نعم. او نمی خندد ذوق مالشد، او همی خندد بران اسگالشد. پس خداعی را خدای شد جزا، کاسزن کوزه بخور اینک سزا. گربودی باتو ورا خندی رضا، صد هزاران گل شکفتی مرترا چون دل او در رضا آرد عمل آفتاب دان که آید در حمل زو بخندد هم نهار و هم بهار در هم آمیزد شکوفا و سبززار صد هزاران بلبل و قمری نوا افگنند اندر جهان بینوا چون که برگ روح خود زرد و سیاه می ببینی چون ندانی خشم شاه آفتاب شاه در برج اتاب می کند روحا سیاه همچون کباب آن اتارد را ورقها جان ماست آن سپیدی وانسیه میزان ماست. باز منشور نویست سرخ و سبس، تارهند ارواح از سودا و عرجز. سرخ و افتاد نسخ نوبهار، چون خط قوس و قزه در اعتبار. برنامه های مصنوی معنوی مولوی را مینوکتاش و شهباز ایرج تحییه و اجرا کردند.